کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران جلد چهارم، نویسندگان علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد گوسانی گوینده فاطمه یعقوبی شنبندگان کانال هزار افسان. از این کتاب زیبا داستان خدای این شهر و خدای اون شهر یکیست رو تقدیمتون میکنم امیدوارم خوشتون بیاد و تا آخر این داستان همراه من باشید. متن کامل این روایت رو از کتاب قصه های مشهدی گلین خانم نقل میکنه یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیشکی نبود یه مرد کارگری بود وقتی بنایی می کرد به اون هفت سنار می دادن. خاک رو کشی هم میکرد تا غروب هر چه کار میکرد، فقط دستمزدش همون هفت سنار بود. آب حوز میکشید بنایی می کرد، تا شب باز هم همون هفت سنار گیرش می اومد. حتی اگه تو روز کار نمیکرد و تا غروب می وقتی از خونه بیرون میومد و همینجوری علکی تو کوچه میگشت پولی رو هم که پیدا میکرد همون هفت سنار بود. یه روزی میره پیش حضرت موسا و میگه ای موسا برو به خدای من بگو من روزیم کمه. حضرت موسا بعد مدتی اومد و گفت خدا میفرماید تو روز اول همون هفت سنار رو قبول کردی دیگه بیشتر نمیشه. او مردم گفت خیلی خوب. نشه منم از خدای اینجا قرد میکنم و میرم. حضرت موسا خندش گرفت و گفت امو مگه خدای اینجا با جای دیگه دوتاست؟ اونم جواب داد خب حالا ما میریم تا ببینیم جای دیگه چی میشه. اومد خونه بو دست زنش گرفت و رفت. اونا بعد سه روز وارد یه شهر شدند. غروب بود. یه امارتی اون نزدیک داشتن میساختن. اونا جلو رفتن و گفتم ما شب جایی رو برای موندن نداریم اگه اجازه بدین مهم شب اینجا بمونیم صاحب امارت که مرد مسلمونی بود گفت بله میتونید اینجا بخوابید و تا زمانی که ساخت این امارت تموم بشه نگهبانی بدین و موازه به اینجا و وسیله ها باشید اونا هم شدن و شامشون رو خوردن و خوابیدن همسر اون آقا درد زایمان شروع شد و گفت آقا پاشو این اطرافو بگرد ببین پارچهای چیزی میتونی پیدا کنی و برام بیاری اون مرتم بلند شد و شروع به گشتن کرد تا اینکه دو تا از این پیراهنای پاره کارگرای ساختمونو که عوض کرده بودن و اونجا افتاده بود و پیدا کرد و برداشت همسرش بچه رو به دنیا آورد و دیدن خدا به اونها یه پسر داده مرد هم از جاش بلند شد تا برای زنش آب بیاره توی حیات پاش به یه چیزی خورد و افتاد زمین وقتی خم شد تا ببینه چیه چشمش افتاد به یه دیگه پر از پول. با خودش گفت ببین صابخونه برای امتحان این کار کرده تا ببینه ما دست میزنیم یا نه بیخیال شد و برگشت صبح شد و صابخونه اومد و گفت بابا جان به شما که دیشب بد نگذشت مرد جواب داد بد نگذشت اما دیشب یه کمی سخت بود چون بچه‌مون به دنیا آمد و اینکه خدا میدونه ما به اون امانتی که شما میخواستید باهاش ما رو امتحان کنید دست نزد رفتم آب بیارم پام خورد بهش صابخونه گفت امانتی چی؟ بیا نشونم بده ببینم اونو برد سر دیگه و بهش نشون داد سابخونه نگاه کرد و دید یه دیگه پول و سکه برای چندین سال پیش و قدیمیه رو به مرد کرد و گفت این پول مال من نیست مال بچه توه که خدا دیشب بهت داده این پولو خدا برای اون فرستاده من این حیاتو گود برداری کردم دستی خاک ریختم و آوردم بالا مگه دیوونه بودم دیگه پول بذارم اینجا سابخونه دفترشو آورد و از ساعتی که کارگر اومده کلنگ زده تا ساعتی که این پول پیدا شده هرچی که خرج کرده بود از روی این پول برداشت و گفت حالا این خونه مال تو میخوای بساز و تموم کن میخوای بمونه این پولم قایم کن کسی نبینه برای خودت مقازه باز کن تجارت کن و نذاریم مردم بفهمن تو فقیر بودی یهو صاحب این پول شدی. مردم گفت باشه. پس شما خودتون این بزرگیر در حق من انجام بدید. سابخونم مغازه خرید و این مرد شروع به کار کرد. یه سال گذشت و زنش دوباره حامله شد و به خاطر همین کار مردم رونق بیشتری گرفت. کار به جایی رسید که صاحب گاو شطور کل شهر شد و هرچه مسجد خراب داخل شهر بود رو ساخت و نو کرد. همسرش بچه رو به دنیا آورد و خدا این بار هم بهشون پسر داد. یک سال دیگه دوباره حامله شد. اما وقت زایمان نمیتونست بچه رو دنیا بیاره. در همون سال حضرت موسا به همون شهر اومده بود. اومد رفت پیش حضرت موسا و گفت ای موسا برو به خدا بگو این بندی تو چند روزه گرفتار شده نجاتش بده. حضرت موسا به کوه تور مناجات رفت و همون لحظه ندا اومد که ای موسا چرا عرض بنده رو منو نمیگی؟ حضرت موسا گفت الهی خودت که بهتر میدونی نجاتش بده این بیچاره رو. ندا رسید که ای موسا اون یه چیزی رو میخواد که نمیتونه جمع بری کنه. میگه تا هم نمیره. حضرت موسا گفت الهی چی میخواد؟ ندا رسید ای موسا روزی ده هزار درم میخواد. حضرت موسی گفت برای شما که کاری نداره چی میشه اگه بدی؟ ندا رسید فقط به خاطر پادر میونی تو بهش میدم. برو بهش بگو که بچه دنیا اومده. مردم تا شنید اومد خونه و دید بله زنش سایمان کرده و یه پسر دیگه خدا بهشون داده. خیلی خوشحال شد. حالا که سه پسر داشت داراییش به جای رسید که شطورهاش توی کل دنیا بود یه روز توی کوچه حضرت موسا رو دید و حضرت موسا بهش گفت حالا حالت خوبه؟ خوشحالی؟ جواب داد از خدای اونجا که قر کردم اومدم خدای اینجا به من این همه دارایی رو داد اینقدر که نمیتونم جمع کنم حساب و کتاب مالم از دستم در رفته حضرت موسا گفت این حرفو نزن خدای اینجا و اونجا هر دوتا یکیه مرد گفت همچین چیزی نیست. خدای اونجا اگه این بود همین دارایی رو به من میداد. ولی وقتی اومدم اینجا فرداش این همه انوال داد. اونجا هممالی میکردم همه کار میکردم فقط هفت سند نار میداد. از وقتی اومدم اینجا صابخونه صد کرور بهم به داد. حضرت موسا شنید و رفت. عشر که برای مناجات رفت خدا گفت ای موسا امروز با بنده من چه کردی؟ جواب داد خدایا این بنده تو دیوانه است. هر هرچی میگم خدا یکیه میگه دوتاست خدا گفت فردا برو بهش بگو ای مرد اینا روزی بچه های توه پس حالا کم کم نشونت میدم که خدای اونجا به تو داده یا روزی بچه هاست شب شد پسر هزار درهمی تب کرد بعد از سه روز مرد همون روز خبر آوردند سه هزار شطورت مرده فردا خبر آوردند که ده کشتی که به دریا رفته بود غرق شد این دارایی که پنج منشی میتونستن حساب کنن در عرض پنج روز نصف شد پسر دومی هم تب کرد اونم بعد سه روز مرد باز هم خبر آوردند که فلان ده آتش گرفته فلان محصول آفت زده این نصف مالش هم نصف شد یه ماه گذشت بچه اول تپ کرد. ده روزم بچه اولی مریض بود و مرد. فرداش خبر آوردن حجره آتیش گرفته. شب که خوابیدن دیدن خونه میلرزه از خونه اومدن و رفتن تو حیات. یهو کل خونه خراب شد. صبح که شد نه قبا تنش بود و نه چادر سرش. زور همسرش بهش گفت آخه یه فکری بکن. من از گشنگی میمیرم، مردم بلند شد و رفت، دید هفت سننار یه گوشه افتاده. روزیش همون هفت سننار بود. بعد حضرت موسی رسید بهش و گفت، دیدی اگه خدای این شهر به تو این دارایی رو داده بود، چرا ازت گرفت؟ پس ببین قدم بچه های تو بود، خدا همون خداست، بچه هات رفتن، دارای هات هم رفت. داستان خدای این شهر و خدای آن شهر یکی است برگرفته از داستان مشهدی گلین خانم صفحه 362 گردآورنده ال پی ال ول ساتن ویرايش اولریش مارتسولف آذر امیر حسینی سید احمد وکیلیان ممنونم که همراه من بودید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 قصه هایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان با های تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصه های دیو و غول و پری رشادت های قهرمان های قصه ها همه و همه و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صی مهران دوستی،